شوال این است آیا خواندن نفل با جماعت یا قیام اللیل که بعضی حالا ده اخیر رمضان قیام اللیل دارند و نماز را با جماعت می خونند بعد استراوی نسل شد بیدار می و و دوباره نماز را با جماعت یا همون تهجد را با جماعت می خونن. در مورد قیام اللیل یا همون نماز تهجد با جماعت یا هر نفلی با جماعت هر نفلی با جماعت آیا جائز هست یا جائز نیست حالا متون کتب فیغی عبارتی دارند که کسی که نماز نفل را با جماعت بخانه اون نفل تحدد رمضان باشه یا غیر رمضان در هر صورت اگر سه نفر بودن مکروه هست بعضی اختلاف دارن سه نفر میگن جایزه و چهار نفر رو مکروه تحریمی میدانن اگر چهار نفر رسیدن مکروه تحریمی میدانن این که چهار نفر باشن نماز نقل و با جماعت بخونن قیام اللیل باشه یا غیر قیام اللیل اینو به بالاتفاق میدونن جایز نمیدونن اما یک شرطی را فوقها بزاشتند گفتند که یعنی قیام اللیل به صورت تدائی باشه یا یعنی مردم فرا بخوانن برای نماز در این صورت میگم مکروه هست اما اگر بدون تدائی باشه و میگویند که اگر یک دو نفری جمع شد اشکالی ندارن. اما این تا این حدش است. حالا دلائر شو میگم و آخر هم توضیح کلی بینیم اول این است که بعضی حالا بعضی می آین امروز رمضان رو با ترابی رو با جماعت می و بعد از ده اخیر رمضان ده اخیر رمضان در اون حالا اون ده روز را هم را با جماعت می وقتی که علی حقم شبونه است اول احی جسو بار میکنیم عمل نبی کریم بررسی میشه آ واقع نبی کریم صلی الله علیه و سلم چه کاری یا نه بعد خلفا راشدین و صحابه در ماه مبارک رمضان از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و فقط سه شب نماز تراوی نقل شده فقط سه شب نماز تراوی نقل شده بیشتر نقل نشده و فقط چه شاد بوده یک نماز بیشتر نخواند یعنی یک وقت نماز خواند دو وقتش نبی کایل خون این نبوده که اول شب هم بخونه و پایان شب دوباره جماعت بعدی را با اصحاب کرام بخونه خودشون خودنگ در این بحثی نیست اما این است که آیا دوباره جماعت بعدی را با اصحاب کرام خونده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم چنین کاری نکرده هر کس چیزی ادعای بکنه دلیل بیاوره چون در خزانه حدیث چنین چیزیز وجود ندارد که نبی کریم در یک شب رمزان دو بار جماعت خونده باشند ایک, ایک بار خونده همون نماز ایک بار بیشتر نخونده. بعد میرسید اثر خلافای راشدیم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نوک جماعت جمکل یک جماعت بیشتر صحاب اکرام نمیخوندند ایک جماعت میخوندند تراوی بعد میرسند بی سورت وجود نداشت این روزه همکسی همه میشه. حالا دلیلی نیست. جالبی نیست که اونهاهایی که مدعی هاشر که تراوی هستند، جالبی خودشون دارن قیام ولی میکنن. و می بعد میگویند که ای تراوی تهدیدیه. چرا دوبار میخونید؟ اگر یکی چرا دوبار میخونید شما؟ و بعد این همی که ادای سنت و حدیث میکنید یہ حدیث لاغل بیاری ولش ضعیف باشه که پیامبر صلی الله علیه و آله دوبار در رمضان حال جماعت بر گزار کردن، یه yes, خواپ را شدین دو بار در رمضان جماعت و در گزار کردن این چیز ثابت نیست. حالا میگن که مکی خوند میشه مدینه خوندی میشه فلانجا خونددی میشه حالا یه خون ها رو بزارید چ ماد داری روی بحث میکننی در حدیث این چیز رو نداریم با؟ حالا ب بعدین آیا جماعت نفل چگونه هست که نفل میشه با جماعت خوکن یا نفل با جماعتی که بشکلی که مردم فرابخانه جماعته بزرگی بشه ہے، چون سبوتی در خیر القروم و صلاف ندارد که صلاف بیان به عمل بکنند نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند که نماز فرض در مسجد افضل حق باید خونده بشه و نماز نافل و سنت در خونده افزال است رو این تاکیر کردند خونه ها رو قبرستان نگیری داخل خونه نماز خونی. آفرمودند که اینکه شما شون نمازدار و مخفی خونید نفل ها رو این افضلتره داخل خونه بعد خوندنش مخفی باشند، ظاهر نباشند. ایلا فرض بعد ظاهر بشه مردم ببینن داخل مساجد. تأکید زیاد روی تشویق هست، تاکید هست، ترغیب برای خوندن نمازها داخل خونه. اما ای خود نبی کریم، صلی الله علیہ و غیر از رمضان، غیر از رمضان. غیر از رمضان آیا نسلی با جماعت خوندیان یا نخونده این محل بحثه است سه چهار تا حدیث داریم که نبی مکرم اسلام صلی علیه و سلم در غیر از رمضان جماعت خونده شد. جماعت خود و خود برگزار شده جماعت برگزار نکردن اما با نماز نبی کریم اختدا شد حدیث اول حدیث حضرت عبدالله ابن عباس است، لیلت المبید است. هست داخل خونه حضرت مینونه نشستن بعد که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کردن آن پشت نبی کریم صلی نماز تحجیز بود و آن حضرت هم سمتراس را آورد و قرارش داد پس اینجا نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اینجا پشت نبی کریم اخداش خود نماز جماعتی دون افرش سورت گرد تا اینجا که چ نبی کریم نگف بیا خودش اومد نماز کن یک سری دیگر اطبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہو هست و صحابی بدری هست فرمودند که یا رسول الله بین من و بین مستد و نبی رودخانهی هست وقت یک بارا می این رودخانه پور میشه و من نمی مست مستد برای نماز بیایم. آیم حالا شما یک لوت فرمایید در خونه من و در یک گوشه از خونه جرک از نماز شما بخانیده تا اون جای که شما نماز خوانی من سجدهگاه بگیرم همیش اونجا نماز بخونن این محبت صحابه ایشو عادت خونه من بیا یک جای دورتر کد نماز بخوانید من همونجا دورتر کد نماز دواره روی جای شما نماز نفل و بادیو جا میخونم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه سلام تشویق بردم اونجا ارتمیز کردی بودن اسیر و عذبیده بودن اونجا درست گفت کجا بخون گفت اینجا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و با صدیق نمایش شروع کرده، صحابی فستفاف نه خلفه او ما پوشش را اینجا می‌کنیم. نبی کریم نگفت شما بیا صحبت بندی. خودشان شروع کردن نمازه، صحابی کرند گفت حالا ما با نماز می‌بینیم نماز می‌خونیم، اخداکاران اینجا سفیر تشکیل دادند. حالا چند نفر بودند؟ در روایت نام می‌دانیم چند نفر بودند. می‌گویم اونها صف است. تو خونه ای که باشا حالا خونه اجازه نمیشه باشی که وقتی دی بوده با آل خونه. اطبانه برمالک بوده شایه هم مختصط در جای نبوده که نبی کریم سکیرو را ترکی این دوتا و روایت سیوم حضرت نبی مقرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دفت خونه قالبه انشاءالله امی حرام بودن و اونجا نماز خوندن حضرت اناس و برادرش یتیم و خالش امی حرام و مادرش امی سلیم پشت نبی کریم نواز خوندن اونجا نماز نفر خوندن اونجا هم دواره دو پشت نبی کریم نواز خوندن و روایت چهارون این است که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بود از اصل افتادی بودن پا در رفتی بود در داخل بالا خانه بودن صحابه کرا ملاقات رفتن داشت نفر میخوند جابر بیگی ما هم پشت نبی کرنجا صحب بستیم و روایت پنجوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ و تعالیٰ عنوی فرمان وقتی که ما از دفن نکردن او بخل صدیق فارغ فرمودم من نماز بیتر رو نخوندم چون با بیتر خونم صحابه کرم خوشت حالا اینها روایاتن که دوری بوده احادیث صحیح هستند که نبی کریم کرده اما هیچ کدام از اینها در رمضان نیست پس تخصیص کردنم به رمضان خودش چیزی درستی نیست کیونکه اله تخصیص میکنیم به رمضان درست نید چون که روایاتی که حال خونده شده همه روایات متعلق به غیر از رمضان بودن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم در رمضان فقط یک جماعت خوند دو تا جماعت تکرار نشده نه از خودشان و نه از صحابه اکرام اون روایاتی خونه همه از صحابه اکرام نبی کریم در غیر از رمضان بودن این از علماء میگوین که اگر تدائی نواشد نماز بی تا چهار دست نفر جمع شدن اشکال نداره سنجایی کسی دار نماز بیخونه دو نفر پوش اصطفی بستن اشکال نداره طبق حدیث اینو که چهار نفر شدن مکروح میشه چرا؟ بیگویه نگاه کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفر رو با جماعت اصطفی نخوندن الا چند مورد, چند مورد. اون چند موردی یا مختصر بوده پس ما بر همون اختصار او رو میگذاریم بر همون اقتصابی گذاری با همون شراعی بیشتر اونو تعدی نمیدهیم تو نبی کری اینجوری خوننن این هست کل لب و لباب نماز نفر در جماعتی که بوده حالا جا جا دیگری خونده میشن جاه دیگری خونده میشن مثل مکی خونده میشه یا در خود و صلاح کشور عربی خونده میشه و جاه دیگه که بعض از علماء میخونن این هم اشتهادی هست این اشتهادت و این قیاس هست آنهايي که مخالفي آلي که علماي قياس و قبول دارند و بر خودشون رأي پيدا ميكنن حالا ما ميگيم حالا ديكه خودشون قياس کرده اما آنهاي قياس و قبول ندارند هميشه اتهامي داشت و مخالفه ديسيد حالا آنها چرا ميكنن؟ که آب را که نخونن صاحبي که نخونن آنها كسي را خوند؟ آنها چرا دار ميكنن؟ بيار حال. حالا حالا رأي شما پس جماعت نخونيد؟ و تنها بخونه تنها نماز نفخونه افضلتر است داخل خونه ثوابش پیشتر است سنت داخل خونه بخونه بخونه داخل خونه بخونه و نماز فرد داخل مسجد بیایی حالا نماز تثبیح باشه یا نماز تحجد باشن جماعات بالا چهار نفر مکرو ولماز دیکر کرده انکه بخاطنی که صحابی کران صحابیت نیست حالا این که خانومها شروع کرده صلاح تسمیر جماعت می‌خوانند یکی نشسته تاریخ ختم می‌دهد به دیگران اینها همهشون آجائزن اینکه خانوم بی یک ناجائزه دوار خدایان بیرون بود باز این ناجائز خوابت نیست بیای رحال این کل داستان قیام الله است از دیدگاه حدیث و روایات فقهي ولما میگیم تداوی نواشید دو نفر جانشان جایزه اگر فراقان دیهمیش بیای همیشه بخوانیم همیشه بخوانیم درست نیست ترکننگاه اگاهی خونده شد بس یک مومد نواس شوکت چند پر این راه داری اما همیشه بخوانیم هر ده اخیر بخوانیم این رسم قرار بدهیم این, این موازیبت ثابت نیست از این پرهید وید کرد که خوف هست که این در بدعت وارد شود این امکان دارد در بدعت وارد شود چرا چونکه از پیان بر ثابت نیست اما یک چیزی صحابه شده این است که نبی مکرم السلام صلی علیه و وسلم در دهه اخیر رمضان که می شوده که شد و ای قضا اهله خودش محکم بس کمر رو می کمر کامر و خانواد رو بیدار می که تا آخرش رمضان عبادت بکنی. این است سنت خودش وا و خانوادته واهم بشینید اونجا عبادت بکنی واهم کی با سچار چهار نفر خسته نمیشی خواب تو نمیبره کسی بغلش خوابش واهم بشینید دیگر میشه تو میشه خواب هم اشاره مییاره واهم بشینید باهم عبادت خیلی لذتش بیشتره نه با تنها قرآن بخونی ذکر بکنی نماز بخونی تا صبح و تار ال فجر و سحر هم میت راحت راحت اینجا انجام تو عبادت بکنی